افثانه های مردم ایتالیا به روایت یان ولادیسلاو مترجم فرهاد فراهانی نعمت الله یا پور ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افسانهای صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده ناهید الیاسی این داستان حانه بامزه روزی روزگاری کشاورزی بود که دختر باهوش و زیبایی به نام هانه داشت. تمام ده کده حانه رو میشناختن و بهش حانه بامزه میگفتن چرا که دختری شوختب و بگو و بخند بود. ده که کشاورز و دخترش تو اون زندگی میکردن نزدیک شهری بود که حاکم اون شهر هم یک دختر داشت. شاهزاده خانومی زیبا و باهوش ولی بد بدانق و بد اخلاق اون همیشه عصبانی و تنها کنار پنجره میرفت و نه با کسی شوخی میکرد و نبا کسی حرف میزد و هیچ کس خنده به لبهاش ندیده بود. پادشاه برای علاج دختر شوبد بازها و دلقک ها رو دعوت میکرد تا اون رو بخندونن ولی این برنامه ها کمترین تأثیری بر شاهزاده خانم غمگین نمیگذاشت سرانجام وقتی پادشاه برای علاج افسردگی شاهزاده خانم با درباریان گفتگو گو میکرد یکی از حاضرین پیشنهادی رو مطرح کرد گفت تو یکی از دهکده های نزدیک کشاورزی زندگی میکنه که دختر بسیار باهوش و بامزه ای داره میتونیم از اون تقاضا کنیم که این مشکل رو حل کنه پادشاه با استقبال از این حرف دستور داد فوری اون کشاورز رو احزار کنند کشاورز بیچاره بی خبر از همه جا با دیدن پیک پادشاه مات و مبهوت هر چقدر به مغزش فشار آورد تا بفهمه که چه جنایتی مرتکب شده، فکرش به جایی نرسید. بالاخره به این نتیجه رسید که حتما دخترش هانه که زبونش قفل و بست نداره، حرفی یا حدیثی گفته که نباید میگفته. اون وقت کشاورز با تندی به دخترش گفت دیدی ای دختر نادون، حالا جواب پادشاه رو چی بدم؟ با این اشتباهی که کردی خدا میدونه چه بلایی سرمون میخواد بیاره حانه جواب داد بابا جون نترس از کجا معلوم که این احزار به خاطر حرفا و خنده های من باشه شما که هنوز هیچی نشده نیمه جون شدی مطمئن باش که اگر پای من بیاد وسط میام و کارارم رو به راه میکنم کشاورز بهترین لباس کلاه و کفش خودش رو پوشید و با دلهوره و نگرانی به شهر رفت و به حضور پادشاه رسید. از ترس مثل بیت می لرزید ولی یک به خودش مسلط شد و پادشاه به آرومی و لطف گفت کشاورز عزیز شنیدم دختر زیبا و بامزهی ای دارید. آیا این مطلب درسته؟ کشاورز پاسخ داد؟ بله ای پادشاه بزرگ ولی اون دختر سادهیه که هرچی تو دلش داره به زبونش میاره و قادر به کنترل زبونش نیست اگه خدایی نکرده خلافی یا اهانتی از اون سرزده اونو ببخشید چرا که کم سن و ساله و بی تجربه پادشاه با تعجب پرسید از چی داری حرف میزنی ای مرد من فقط میخوام بدونم که آیا همونطور که شنیدم دختر دختر باهوش و بامزهای هست یا نه کشاورز که گویی سنگی به سنگینی یک کوه رو از دوشش برداشتن گفت بله دختر من همینطوریه از بچگی شوختب و بذل بود و مردم رو میخند و پادشاه گفت بسیار خوب برو اون رو نزد من بیار تا کنار دخترم باشه یادت بمونه که اگه یه ذر دختر من رو شاد و خوشحال کنه من شما رو خوشبخت میکنم. کشابرس با شنیدن حرف پادشاه خوشحال شد و با شتاب به منزلش رفت. از دور هانه رو که تو انتظار نشسته بود صدا زد. گفت دخترم به تو شاد باش میگم از امروز باید به قصر پادشاه بری و همنشین شاهزاده خانم غمگین بشی. اگر بتونی اون رو از افسردگی نجات بدی پادشاه پاداش خوبی به بهمون میده. هانه با وضعیت نامناسب به سوی قصر پادشاه بره افتاد. پای برهنه، موی ژولیده، لباس کهنه و کثیف و دستهای دودی. کشاورز بهش گفت: ای بابا سب کن دختر، با این وضع میخوای بری به قصر پادشاه؟ خجالت نمیکشی؟ حداقل برو لباس و کفش مهمونی تو بپوش. ولی حانه عقیده دیگه داشت. گفت نه من که تمام سال همین شکلی دارم میچرخم با پای برهنه و این لباسای کسی حالا هم به کفش نیاز ندارم. میخوام همون جوری که توی زندگیم بودم برم اونجا. مگه نشنیدی که گفتن خودت باش. اگه خوششون نایمد میتونن منو برگردونم. من که از اونا خواهش نکردم، من نمیتونم تظاهر و درویی کنم. هانه منتظر جواب پدر نموند و راه شهر رو در پیش گرفت. به دروازه قصر که رسید، به شونه یکی از نگهبان زد و گفت بود دوباره به پادشاه بگو که من اومدم. نگهبان که تا آن روز چنین مهمونی رو توی قصر ندیده بود فوری به اطلاع پادشاه رسوند که دخترک پا به رهنه و جولیدهی به زیبایی یک گل سرخ قصد شرفیابی داره اون هم اجازه حضور رو صادر کرد هانه اومد و پس از ادای احترام پرسید خب شاهزاده خانم کجا تشریف دارن؟ پادشاه روبرو رو نشون داد هانه به راهنمایی بیشتر احتیاج نداشت در و باز کرد در مقابل شاهزاده خانم تعظیم کرد و براش لطیفه های بامزه و خنده دار تعریف کرد شاهزاده خانم هم اونقدر خندید که از خنده روده بر شد این داستان هر روز تکرار می شد با اومدن هانه شاهزاده خانم غم رو فراموش کرد و تا اون دختر زیبا و باذلگو دهانش رو باز میکرد صدای خنده و قهقهش به آسمون میرفت پادشاه شاد و خرسند دستور داد تمام نیازمندی‌های هانه را تأمین کنند و اون را در ردیف یکی از ندیمه های دربار درآورد. هانه مغرور شد و به یک بار لباس کفش زیبا و جواهر خواست و گفت زمانی که من ندیمه دربار هستم باید مثل دیگر درباریان لباس های فاخر بپوشم. ندیمه دربار هنگامی که تو رکاب شماست باید باعث فخر و سربلندیتون باشه نه معجب سرفکندگیتون نظر شما چیه شاهزاد خانم شاهزاده خانم با تایید حرفای هانه دستور داد پوشش و آرایش اون را اشرافی کنن. بنابراین اون از اون پس نه تنها ظاهرش رو مثل بانوان دربار درست کرد بلکه با شاهزاده خانم از در رقابت و چشم و همچشمی در اومد. آموزگاری خواست تا بهش خوندن و نوشتن یاد بدن و تو مدت کوتاهی نه تنها با سواد شد بلکه بر های اون روزگار هم مسلط شد. پادشاه اون رو مانند دخترش و شاهزاده خانم اون رو مثل خواهرش دوست داشتن. و همه درباریان اون رو به چشم شاهزاده خانم دیگه می دیدن روزها و هفته ها و ماها گذشت روز و روزگاره هانه هم هرچند در ناز و نعمت ولی تکراری و یکسان گذشت اون برای فرار از روزمرگی و تکرار مکررات به شاهزاده خانم پیشنهاد داد تا بار سفر رو ببندن و به سفر برند. شاهزاده خانم سرش رو تکون داد و گفت مثل اینکه عقلت رو از دست دادی یا فکر میکنی پدرم اجازه بده که ما تنها به مسافرت بریم چه فکر خامی تازه اگر اون هم موافقت کنه جواب مردم رو چی بدیم هانه جواب داد به حرف مردم زیاد اهمیت ندید خیلیها از روی جهل حسادت و کینه داده سخن میدن باید دید اونی که داره حرف میزنه کیه و حرفش چیه بنابراین اگر موافق هستی ده نفر از زنای زیبا روی دربار رو برداریم و بریم سفر چه کسی جرئت داره که مزاحم دوازده تا دختر بشه؟ پیش نادهانه به دل شاهزاد خانم نشست فوراً به حضور پادشاه رفت و اون رو مطرح کرد پادشاه گفت من حالا پیر شدم و نمیخوام تنها باشم. اگر بلایی سر من بیاد کی به دادم من برسه؟ در ثانی این درست نیست که دختر یک و تنها به سفر بره. شاهزاده خانم غمگین و ناامید نزد هانه اومد. هانه گفت این رو بذار به عهده من. مطمئن باش که پادشاه رو راضی میکنم. همون همونطور که گفته بود اون قدر تو کوش پادشاه خون که اون رو راضی کرد. هانه و شاهزاده خانم ده تا از دخترای دربار رو انتخاب کردند. همگیشون مثل خودشون قدر بلند و رعنا بودن. اون وقت دست جمعی لباسهای زیبا و یک دست پوشیدن و با پادشاه خداحافظی حافظی کردند و راهی سفر شدن. مدتی از این قصر به اون قصر از این شهر به اون شهر و از این ده به اون ده می تا سرانجام به شهر بزرگی رسیدند و تصمیم گرفتند مدت طولانی توی اون شهر اطراخ کنند توی یکی از مهمون خونه های اون شهر دوازده تا اتاق اجاره کردند و روز و شب به گشت و گذار پرداختند جوانه شهر هم دست دست مثل پروانه گرد دخترها میگشتند و دست از پاد با بیتوجهی اونا روبرو می شددند. تو این سفر دست جمعی هر کسی مسئول امور مربوط به خودش بود، شستشوی لباس و دوخت و دوست و این فقط هانه بود که هم کارهای خودش را انجام میداد و هم کارهای شاهزاده خانم رو. یه روز که هانه مشغول مرتب کردن اتاق شاهزاده خانم بود، عکس روی دیوار رو برداشت تا تمیز کنه. یک دفعه پشت اون عکس پنجره کوچکی به چشمش خورد. کنجکاف شد تا ببینه اون پشت چه خبره. بالای صندلی رفت و از پنجره بیرون رو تماشا کرد. اون طرف آشپزخونه بزرگی دید. آشپزخونه مجلل و اشرافی و پر از غذاهای رنگارنگ و شیرینی های خوشمزه. انگار که صاحب اونجا چشم به راه مهمون عالی مقامی بود حانه شوخی خندهداری تراحی کرد مدتی در انتظار موند تا آشپز از سالن بیرون رفت اون وقت مثل گربه از پنجره به آشپزخونه رفت دو تا از بهترین غذاها رو برداشت و تو بقیه غذاها مشت مشت نمک ریخت اون شب دخترا چنان شام خوشمززهای خوردن که تو عمرشون کمتر شامی به این خوشمزگی خورده بودند اونا از خانه پرسیدند که غذاای خوشمزه را از کجا تهیه کردی که پاسخ اون مثل همیشه خنده بود از اون طرف پادشاه داد و فریاد میزد و نعره میکشید چرا که به هرچی که دست میبرد شور بود و غیر قابل خوردن پادشاه فرمان داد تا آشپز باشی رو احزار کنند و حساب سحل هاش رو کف دستش بذارند. آشپز بیگناه و درمانده به حضور پادشاه رسید. مثل بید می لرزید و مثل ابر بهاری گریه می کرد. آشپز با گریه گفت پادشاه شما خوب می دونید که تا به حال چنین اتفاقی نیفتاده. مطمئن باشید که این یه توت است، و من گناه و تقصیری ندارم دل پادشاه از عجز و گریه آشپز به رحم اومد و اون رو مورد بخشش قرار داد به شرط اینکه توی پخت و پسهای بعدی هوای نمک رو داشته باشه آشپز خوشحال خندون تمام روز به آشپزی پرداخت کسی رو به آشپز راه نداد و هر غذا رو دو بار چشید و امتحان کرد قافل از این که شیتون شیطون پشت پنجره تو کمین نشسته و باز هم با رفتن آشپز مثل گربه چالاک از پنجره پایین پرید دو تا از بهترین غذاها رو برداشت و تو بقیه غذاها مشت مشت نمک ریخت آشپز باشی با مزه کردن غذاها به فریاد و فقان افتاد باز هم غذاها شور شده بود به حدی که سک هم به اون لب نمیزد دوون دوون به حضور پادشاه رسید و گفت پادشاه ها حتما جادو جنبلی تو کاره من تمام بیست و چار ساعت تو خونه بودم و غذا را حداقل دو بار مزه کردم مطمئن باشی که من بیگناهم و هیچ تقصیری ندارم پادشاه حرف آشپس را پذیرفت گفت بسیار خوب فرصت جبران هست. فردا ببینم چه کار میکنی. این آخرین فرصتیه که به تو میدم. زمنان برای اطمینان بیشتر فردا خودم هم میام تا آشپزخونه و نظارت میکنم. آشپس تمام روز در کنار قابلمهها و ماهیتابه ها عرق ریخت و هرچی هنر داشت به کار گرفت تا این بار برخلاف دفعهای پیش با غذا، سوپ، و شیرینی های لذیذ و خوشمزه از پادشاه پذیرایی کنه. وقتی کارش تموم شد از آشپزخانه بیرون رفت تا پادشاه و درباریان رو به شام دعوت کنه. تو همین لحظه هانه مثل همیشه به داخل آشپزخونه رفت. دو دونو از قضاها رو برداشت و تو بقیه نمک ریخت. ولی این بار برخلاف دفعات پیشین، در دام پادشاه جوان که خودش رو توی کمودی پنهان کرده بود گرفتار شد هانه با ترس و لرز حرف پادشاه رو میشنید بالاخره به چنگ آوردم ای دزد کوچولو و حق باز خدا میدونه که چه مجازات سختی در انتظار توست هانه با کمی تعمل جواب داد من که دزد نیستم تو عمرم جز درستی و صداقت راهی رو نرفتم فقط میخواستم با حضرت عالی و آشپز باشی شوخی کنم باور کنید آلی جناب راست میگم پادشاه جوان همونطور که از مردان بزرگ انتظار میرفت خشم و غضب خودش رو فرو خورد و با متهم بی پناه و ضعیف به نرمی حرف زد و گفت بسیار خوب چنانچه که بگی تو کی هستی و از کجا اومدی و توی این شهر پی چه کاری اومدی تو رو بخشم. هانه نشست و حقیقت رو مو به مو تعریف کرد. پادشاه تمام مسائل رو فهمید و تمام دوازده تا دختر رو به شام دعوت کرد. هانه تو پاسخ پادشاه گفت: بسیار خوشحال میشیم دعوتتون رو بپذیریم ولی اول باید از شاهزاده خانم اجازه بگیریم. لطفا فردا جلوی این پنجره تشریف بیارید تا جواب رو تقدیمتون کنم. بعد مثل همیشه از راه پنجره به آشپزخونه رفت و دوتا از غذاهای خوشمزه رو برداشت و رفت. این بار هم غذاها بسیار خوشمزه و لذیذ بودند. دخترا طاقتشون تاخ طاق شد و با اصرار و خواهش زیاد راز و رمز غذاهای خوشمزه رو از هانه پرسیدند. اون همین داستان سر به موه رو نکته به نکته تعریف کرد. شاهزاد خانم با شنیدن این داستان عجیب و غریب عصبانی شد و گفت با این کارا بالاخره زندون جای ماست. حالا پادشاه مثل دوست های قضا و شکم به ما نگاه میکنه. بگو ببینم با چه روی میخوای فردا شب بری مهمونی؟ شام پیشگه شده خانم خدا خدا کن به بهونه شام محاکمه نشیم و به خاطر دو سه تا قضا سرمون بالای دار نره. خان خندید و گفت نگران نباشید شاهزاده خانم همه مشکلات با صبر و تحمل حل و فصل میشه اینم یکی از اونا. بعد دوازده تا شیشه شربت برداشت توی اونا گرد خواب آور ریخت و درشون رو مهر موم کرد. فردا شب دوازده تا دختر همگی لباس یک دست پوشیدند، انگشتر یک جور انداختند گوشواره های یک جور آویزون کردند و به مهمونی پادشاه رفتند. هانه هم دوازده تا شیشه شربت را به عنوان هدیه توی سبدی گذاشت و با خودش برداشت. پادشاه و 11 تا جوان دیگه بیصبرانهه در انتظار دوازده تا دختر نشسته بودند. با اومدن اونا هر کدوم کنار نجیب زادهی جا گرفتن و پادشاه هم بین هانه و شاهزاده خانم به صندلی تکیه زد. وقت شام مهمونا با انواع قضاهای رنگارنگ پذیرایی شدند که یکی از یکی خوشمزهتر تر بودن. آشپز باشی این بار روز سفید شد چون که دیگه غذاها شور نبودن. تو این میون، هانه نقل مجلس شده بود و با لطیفه های خودش همه را میخندند و حالا نوبت تقدیم هدیه شده بود. هانه بلند شد و گفت ای پادشاه بزرگ و ای مهمانان گرامی این شربت ناب رهاورد سرزمین مونه. این داروی سلامته و هر کس که از این شربت بنوشه دیگه هیچ وقت به دکتر نیاز پیدا نمیکنه پادشاه و بقیه جوونا هر کدوم شیشه ای از شربت رو برداشتند و تا آخر خوردند. لحظاتی بعد همه سرگیجه گرفتند و به خواب امیقی رفتند. هانه قیچی آرایشش رو برداشت و گفت حالا وقت اون رسیده که سر به سرشون بذاریم و نصفی از سیویلشون رو قیچی کرد. بعد خندید و گفت حالا مجسم کنید چه قیافه داری پیدا می اینا؟ بعد پادشاه و زاده ها را با سیبیل بریده شده رها کردند و همراه بقیه دخترا قبل از در آفتاب از شهر خارج شدند. صبح زود پادشاه و مهمونا با سردرد شدید از خواب بیدار شدند. اونا تا ساعتها حال غیر عادی داشتند و زمین و آسمون را تیره و تار میدیدند ولی به مرور زمان که همدیگر را با نصف سیبیل و قیافه مزهک دیدند، از یک طرف خندیدند و از یه طرف دیگه شاخ درآوردند. پادشاه وقتی خودش رو تو آینه دید گفت، بالاخره اون دخترا زهر خودشون رو ریختن، فرمان میدم که همه شون رو دستگیر کنید و به اشد مجازات برسونید. جستجوی خونه به خونه برای یافتن اونا بینتیجه موند، چرا که اونا، اون شهر رو ترک کرده بودند سرانجام جاسوسان پادشاه در تلاش خودشون ردپای دخترا رو تو یکی از شهرهای کشور همسایه پیدا کردند پادشاه شاد و خورسند از این خبر خودش رو به شکل و شمایل جهانگردی معمولی در آورد دستور داد دوازده تا سیب قرمز رو به پودر خواباور آغشته کنند اون وقت سیپا رو برداشت و همراه محافظای خود به سمت دوازده تا دختر رفت. بعد از ساعت ها رفتن و رفتن به در خونه دخترها رسید در زد و خودش رو جهانگردی تو راه مونده و غریب معرفی کرد که بی پناه و نیازمند گوشه دنجی برای استراحت داشته باشه. هانه در رو باز کرد. دلش به حال پادشاه سوخت و به داخل راهش داد. بقیه دخترها هم با دیدن اون مرد غریب با ترحم به اون غذا دادن و جای گرم و نرمی کنار اجاق روشن براش فراهم کردند. اون وقت پادشاه جهانگردنما نقشه خودش رو پیاده کرد و گفت: بسیار سپاسگزارم ای دخترهای خوب و عزیز. شما منو شرمندی مهر و محبت خودتون کردید. حالا اگر قبول کنید من توی سبدم چند تا سیب دارم که به شما تقدیم می کنم. حانه با تشکر سبد رو گرفت و به اتاق دوستاش برد ولی با شمردن سیبا متوجه شد که تعداد اونا دقیقا دوازده داست. شستش با خبر شد که یکی بودن تعداد سیبها و ادده دخترا امر تصادفی نیست. پاورچین پاورچین برگشت به ناگاه پادشاه به ظاهر جهانگرد رو دید که به جای استراحت توی رخت خواب از پنجره خم شده و خطا به اددهی که تو بیرون ایستادن میگه آماده باشید تا دخترا به خواب رفتن در باز میکنم و حمله کنید. حانه با دیدن این صحنه عجیب و غریب توی چشم به هم زدن جهانگرد رو به بیرون از پنجره هل داد از خوششانسی پنجره کوتاه بود و آسیبی به اون نرسید وگرنه مغزش متلاشی میشد پادشاه لنگ لنگان بلند شد و همراه محافظاش دست از بادر به خونه برگشت اما این بار تو بستر بیماری افتاد و مرضی سخت و لاعلاج گرفت که همه پزشکا از درمانش عاجز شدند. از سوی دیگه هانه با شنیدن خبر بیماری سخت پادشا خودش را عامل اصلی بیماری میدونست و من تو فکر جبران کردن کارش بود. سرانجام هانه برای رهایی از عذاب وجدان شال و کلاه کرد و لباس پزشکی پوشید و برای معالجه پادشاه به قصر سلطنتی رفت با دیدن خدم و درباریان گفت اطمینان دارم که پادشاه شما را علاج میکنم فقط اجازه بدید تنها باشم اگر احتمالا داد و فریادیم شنیدید نگران نشید خدم و درباریان با این امید که پزشک زیبا پادشاه رو مداوا کنه به تقاضاش گوش دادند پزشک رفت بالا سر پادشاه، اون رو به شکم خوابوند و از زیر لباسش ترکهی درآورد آورد و پادشاه را حسابی ادب کرد. یک ضربه دو ضربه تا دوازده تا ضربه پادشاه بیمار مثل کسی که به سلابش کشیدن فریاد و فغان سر داد ولی کسی به کمک اون نیومد. خودش هم اونقدر ضعیف و ناتوان بود که از عهده کمترین دفاعی بر نمی اومد. پزشک از در بیرون رفت ولی پیش از رفتن ای رو گفت. گفت این ضربه ها که نوش جون کردی به خاطر مسائل اون شبها بود ای پادشاه. پادشاه با شنیدن این حرف فهمید که اون دختر کیه. یه دفعه حالش خوب شد. از جا پرید و هانه رو دنبال کرد تا قصه رو براش تعریف کنه. ولی اون شاهزاده خانم و دیگر دخترها به منزل برگشته بودن. پادشاه پیر و ملکه به اونا خیر مقدم گفتند و با شنیدن داستان پرماجرای اونا به شاهزاده خانم گفتند بالاخره با این بزلگویی ها هر چقدر که بهبودم پیدا کرده باشی و مالا مال از امید و نشات شده باشی باید از این بترسیم که امکان دارد جنگ خانهمانسوزی راه بیفته برخلاف تصور آنها پادشاه جوان نه تنها اعلام جنگ نکرد بلکه همراه عدهٔ زیادی از اطرافیان به حضور پادشاه پیر اومد و از هانه دختر زیبا و شوختب خاستگاری کرد پادشاه پیر به این خاستگاری با سوء زن نگاه کرد و گفت هانه جان مواظب باش شاید خواستگاری توطعهای باشه تا پادشاه جوان از طریق اون انتقام مسخره بازیهای تو رو بگیره ولی حانه که یک دل نه صد دل شیفته ی پادشاه جوان شده بود گفت به وجه نگران نباشید ای پادشاه بزرگ پادشاه پیر با ازدواجشون موافقت کرد سه روز و سه شب جشن عروسی مفصلی برگزار شد و های زیادی از گوشه و کنار کشور تو این جشن شرکت کردند. روز سوم که مهمونا جشن عروسی رو ترک می می‌کردند، شاهزاده خانم هم با هانه خداحافظی کرد و گفت: مواظب خودت باش هانه جان. هانه گفت: نگران نباش ای شاهزاده خانم عزیز، من ترتیب همه کارا رو دادم. مهمونا همه رفتند و عروس و داما تنها شدند. هانه تمام شمهای اتاق رو خاموش کرد. فقط یکیش رو روشن گذاشت. اون وقت عروسکی رو روی تخت گذاشت و خودش پشت اون قایم شد. پادشاه جوون تاج خودش رو برداشت و به زمین گذاشت. به تخت تکیه زد و گفت هانه الان باید یادت بیاد که با من چه کارهایی کردی. و مجازات و تنبی حق توه، ولی اونقدر دوست دارم که اگر اظهار ندامت کنی تو رو میبخشم. هانه گفت، به هیچ وجه از کرده خودم پشیمون نیستم، حالا هم اگر بتونم همون کارا رو تکرار میکنم. پادشاه گفت، پس پشیمون نیستی حتی اگر به خاطر اون سرت رو از دست بدی؟ هانه باز هم تکرار کرد که نه من پشیمون نیستم حتی اگر جونم جونمو بگیری پادشاه که خیلی عصبانی شده بود شمشیرش رو در آورد و سر عروسک رو از تنش جدا کرد پادشاه وحشت زده با تصور اینکه جنایت بزرگی مرتکب شده فریاد زد و بیرون رفت خدمه درباریا بیرون ریختند پادشاه رو دیدند که مثل بیت داره میلرزه و این جمله رو میگه ای وای من زنم رو کشتم ای وای من زنم رو کشتم خدمو درباریا سراسیمه به اتاق رفتند ولی از تعجب میخکوب شدند، چون که هانه زیبا توی اتاق نشسته بود و خندید. پادشاه با دیدن اون مقابلش زانو زد و گفت ای هانه زیبا منو ببخش حالا میفهمم که خشم و غذب و کینه توزی و لجاجت چه بلای بزرگ و سم مهلکیه و برعکس خنده شوخی و گذشت چه اکسیر حیات بخشیه. هرچند که گهگاه ممکنه که تلخ و گزنده باشه. دوستای عزیزم داستان ما به پایان رسید. کانال تلگرامی هزار افسان.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 نشانی وبلاگ ما m i h r a